مرز های دانش برنامه ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایدانی دوستان عزیز پای گفتاره جناب دکتر ارسنجانی از مرکز قلب سیدر ساینا هستیم که برامون از امیجینگ و استفاده از اون برای تشخیص درمان بیماری قلب میگفتن میتونیم به پرسش دوستان عزیز پاسخ بدیم دوست عزیز با ما هستیم بفهمید؟ الو بفهمید روستون بخیر من سالم اینه کلسیوم من همیشه توی خون خیلی بالاست نه دیری می خورم نه میخ فقط good diet. Try to keep my diet alkoholide, not acidic. And uh, try paratiroid checkerden, tyroid checkerden چون من خیلی میترسیدم که um, از استخوناست که این کلسوم بالا میاد. کوشن من اینه. من چجوری بفهمم که این چرا کلسوم من همیشه دهه. ده ده. تین. تین انهف. تین. چرا بالاست. اگر چون میترسم به قول شما کلسیوم بره رانگ ج... پ مثل آری آر... و این چیزا بره این کلسیومش بالا چرا من کسیوم بالاست بالا ساپلمن ساپلمه نمیخورم دیری نمیخورم سپاس گگذاره با... خیلی ممنون از این سالتون ام... اکثر اوقات رسید اولی اصلش جا کسیوم هستش این کلسیومی که من دارم میگم درباره چیزی مختلف به توی لگگاه قلب و یه که تو خون میره بالا یکی از بوده چی دستش همجوری گفته این هستش. گفتیم، هستش که بر پر که چیز دیگه که اولین نگاه میکنن کنن دوم می که به کلیه بعد نگاه کنن که آیا کلیه چیز مقداری که کرسیم رو به قول من روز ویست می کلیه یا نه و اکثر آقاد که تن هستش چیز دیگه هم باید نگاه کنن آیا البیمنتون لیولتون چقدر و اما که گفتیم پراثاری رو تون چنده اکثر آقاد وقتی که کسی هم بالا هستش خون اول که ما همیشه میخوام چک کنیم مقصد کسی که ای سمتون مدیگ بسید شبیه خودتون پارثار رو داردون رو چک کنن که مطمئن بشن که این اوکی این هم بسیار سپاسد دوست بعدی بفهمید با شما این بفهمید <متصفح> بفهمید Hello. Hello. بفهمید بسیار خوب میفهمید اینجا هم دکتر بفهمید <متصفح> <متصفح> <باشه>. بفهم. <متصفح> <متصفح> <متصفح> <متصفح> <متصف جانم بفهمه بله با تشکر از شما مهمان عزیزتون من یک سآلی داشتم در مورد یه مریضی که حدود 55 سالش این دریشه ای آورتش تنگه ولی هیچ علایه می نداره از 15 سال پیش اه آیا اه یک بسلا از این ایمیجینگ که شما متخصص هستید به نظر شما برای اینکه ادامه بده به به جز ایکو کاریوگرام آیا بسوال دیگه هم هست و اگر ممکنه در مورد خود درمان این آورتیس و اکسنوسیس هم لطف کنید مطالب بگید خیلی ممنون صد. خیلی ممنون از سوالتون ایور اکسنوسیس خیلی چیده آدیه 55 سال یکی هم جوونه که این ایور اکسنوسیس بگیریم. وقتی که ائوریک سنوسس ده این سن میبینیم نگرانی داریم که آیا این ائوریک به شما نرماله به قول معروف این اکثر اوقات ائوریک سه تا لیفلت داره یعنی سه تا پرد داره وقتی که اینجوری میبینیم نگرانیم که آیا دس از ا وب کالد بایکاسپید یا دو تا لیفلت داره اکثر اوقات اکوکاردیوگرام امتحانی هستش که ما رو نگاه می‌کنیم و ببینیم که آیا این چی هستش زمانی که میگیم ای استاسص از لانگ از شما سپتویک نیستین چیزی هستش که ما فقط فالاب میکنیم با اینکه میدونیم که از زمانی که ای سپمرک هستی میتونونه سالیان و سال برین و ذرنی به خودتون نزنیم ولی از برافظای زمانی که سپمرک میشین سپد شما ازش میتونید سنه درد بگیرین بیهوش بشین و کمبود نفس بگیرین اگر این مسائل به اون زمان هست که میتونیم جراحی بکنیم اول چیزی هستش که تنها Therapy for aortic stenosis Is there a There's a Transcatheter aortic valve replacement There's something that comes out And the thing that you see When you see the graft You say that the graft is a number of And if the graft is a lot higher You can choose That the graft is a new technique You can use this Hello How do you understand? Hello How do you روز شما خوشش منم به من سالی که داشتم این بود که شما اگر کسی کسیوا پلاک وجود داشته باشه مقصا در یا اب تریتمنتش فقط استنت یا چیز دیگه هم میکنن امروز اکثر؟ و بفن. خوش نه خوش و این استطتینا مصی داره روشه نه حته سو so, خلیش خیلی ممنون از سوالتون استاد uh, uh, وقتی که پلک دانین uh, و کلسیم سکور می‌کنیم بین این سوالش اینه که آیا این uh, نگرانی ما هستش که وقتی که ما کلسیم سکور می‌کنیم این که این اس ا predictor of how much atherosclerosis you have va midunin ki kasay ke sidmi khunan makhsusen khanoomha agar hum mitunin cholesterol betunin bayin paein na tanha stop the progression yani kam time mikonim ke in badtar beshe in in certain percentage of ladies ha in behtar ham khahat shud makhsusen khanoomha bar ham baret ki pack dashte bashim cholesterol مهمه که شما شروع کنید قرص کولیستر رو خوردن باشه این که همون که میگفتم تعداد مردمی که ما این قرص رو بخورن اگر کولیستر شما زیاد صرف باشه در حدود 550 نفر لازم قرص رو بخورن که یک نفر به نفت بکنن وقتی که کلسفاید قولیستر... پلاک داشته باشین اگر بالای صد باشه فقط 24 نفر لازم هم بخورن که یک نفر باشه و همینش در در حدود ب... بیس درصد بر بیس برابر بهتر میشه مهمتره که شما کلا سوار بخونین تا نداشته باشین بسیار سپاسگزار دوست عزیز بفهمی بفهمید بفهمید بفهمی دوست عزیز سلام سلام خوب شما آقای دکتر من یه سوالی داشتم بفهمید من یه مدت تقریبا یک ماه که تقریبا الان هستیش که تقربا ساق پام داغ میکنه بعد پشت سه پشت کلمم تقریبا یه احساس داغی به،, به سرم دست میده بعد چیش کردم رفتم سیکس کردم کردن از مغزم گفتن که چی نیستش بعد ولی خب خیلی نگرانم کرده و نمیدونم از چیه بعد گفتم که شما یه امکان داره یه توضیح بدین از چی میتونه باشه بعضی وقتام گزگز میکنه دست و پام این وقتی که خیلی ممنون از سوالتون اکثر آقا وقتی که این احساس گزگزگی گز هستش این به احتمال زیاد شبیه به احتمال زیاد اشکال نرف هستش چون این تا احساس گزگز گز کردن چیز هستش که نرف هستش با که کجای بدنتون تون باشه اگر کجای قسمت پا تون باشه چقدر از پایین بره چند درصد پا را افکت کنه و میتونه این نرف کمپرشن باشه توی بک ام اکثر اوقات سخت بگم به چیزی هستی که واقعا باید یک کسی ببینیم دوست عزیز بله من یه سواری داشتم از آقای دوستور در مورد این نایستین یکی از اقوام ما به صلاب هزار میلی گرم از اینو میخوره و کلسورش بالا بود و تریگلی الان خیلی خوب شده همه چیز میخواستم اگه امکان داره در این مورد توضیح بدید در این تحقیقات که شده در مقابل اون داروها ازثراس رو سرمایید ممنون میشم با. اگه میشه من پایک به تلفن بمونم از طریق تلفن گوش کنمم بله خیلی ممنون بله یس این دوایی هستش که ما اتقام هزار می خیلی اگه بتونین خوبی دوای خوبیه چون نه تنها کلسترول روبدتون میره پایین کلسترول رو خوبتونم می بالا اس کو یہ دوا ہے اس کے اکثر مردوں نہیں مٹیوے ان دوا کو ٹالریٹ یعنی یہ چیز حالت فلیشنگ میگرن چیز ہے اس کے اکثر مردوں انہیں ٹالریٹ کنن اگر بتونے ٹرائی کریں دواے خوب یہ اد وقت کی نگاہ میکن سٹو ائی تھنک با ائی گی ریس فیکٹر ڈشے باشین ائی تھنک سٹانس ا ولی اگر بتونے دواے کھن کورس کرن بی ائن اٹس ا گڈ میڈیکیشن ولی ا لٹ اف پیپل ڈون ٹالریٹ اٹ جناب دکتر بسیار سپاسگزاریم. اد اینجا میتونیم بریم پشت خط جواب بدیم بقیه سوالا دوستانی که دارن تلفن میکنن با اجازهتون آقای دکتر به پرسشی شما بعد از این برنامه پاسخ خواهند داد. جناب دکتر واقعا سپاسگزاریم و امیدواریم که در برنامه‌های در خدمت بشید. هفته خوبی در پیش باشه دوستان. مارس های دانش برنامه ای از همجمن استادان و, و پجوشگران ایرانی پرورش روان افتتاح دفتر جدید خود در بریندفود را از اول اکتبر به اطلاع عموم می رسانند. کانون پرورش روان زیر نظر دکتر فوشان زینی با همکاری روانپزشکان، روانشناسان روان شناسان و مشاورین مجرب در امور مختلف روان دربانی فردی، زوجی و خانوادگی در امور افسردگی استراب، اتیاد، ازدواج و طلاق، با پرورش کودکان و نوجوانان به میتودهای نوینی چون ایم ای دی آر، نورو فیدبک، Cbt سی بی تی، دیورس میدییشن فارسی، انگلیسی و هرمانی، در دفتر خود در تارزانا، پسیدینا و پریدفود با قبول اکثر بیمه ها، میدیکل، برای زیر 21 سال و میدیکر، برای سلامت و آرامش روح و روان شما به یاریتان مییآید 8186099989 forgrowth.org 8186099989 forgrowth.org سلام من سیامک کلهور هستم درود و سپاس به شما عزیزانی که در طول 14 سال گذشته شنونده و یار و همراه برنامه شگفتی رایانه بوده اید. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح با من باشید تا با نگاهی دقیق به همه جانبه با ارائه اطلاعات و بیان خبرهای روز در زمینه اینترنت و تکنولوژی ارتباطات همگام با آخرین تحولات نوین جهان باشید یک شنبه ها از ساعت 9 تا 11 صبح.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 یکی عاشقته که تو عاشقشی تو به جای منم پره غست شدی نزا خسته بشم نگو خسته شدی نگران منی که نگیر دلم خواست تو داره میر دلم بس اب تو خودت میدونی من ازت چی میخوام ناگه میشی باشی و تن بمونم محاله بذاری محاله بتونم که من دیگه دلتن